باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خاره هجران صبر بلبل بایدش ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منان مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش رند آلم سوز را با مسلحت بینی چکار کار ملک استان که تدبیر و تعمل بایدش تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری راهرو رو صد قنردارد توکل بایدش با چنین ظلف و روخش بادا نظربازی فرام هر که روی یاسمین و جعد سنبول بایدش نازه ها زن نرگس مستانش باید کشید این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش ساقی ها در گردش ساقر تعلل تا به چند دور چون با آشغان افتد تسلسل بایدش کیست حافظ تا ننوشد باد بی آواز رود حاشق مسکین چرا چند این تجمل